بسم الله الرحمن الرحیم به نام بی بی‌اندازه پربون نهایت بارک آیا ما برای سینه‌ات را فراخ نکردیم و از تو آن بارت را بر نداشتیم که پشتت را خم کرده بود و نام تو را رفعت بخشیدیم یعنی ذکرت را جاودانه کردید کس بیگمان با هر دشواری آسانی است بیگمان با هر دشواری آسانی است پس چون فارغ شدی پس بپاخیز و بازاری و التماس به سوی پروردگار خود روی آورد